بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسيد المرسلين وآل وصحبه أجمعين أما بعد نزلهم من درس أزدر صي السري يوسف عليه السلام قيئ كلفان جم الله جل شأنه وقال الذي نجا منهما والذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون وقال الذي نجا منهم أن تزندني يوسف تعبير خابش منكن عليه الصلاة والسلام یکیشون بر صلیب کشونده میشه و دیگری هم نجات مییابه چنانچه یوسف تعبیر میکنه با قال الذي نجا منهما اون کسی که نجاتی يافته و ذكر بعد, بعد امه بعد امه به بمجموعه از مردم گفته میشه به مدت زمان جمع شده ای گفته میشه یک مدت زمانی یک زمانی و ذکر بعد امه یک زمانی که هم نیست گفته شده یک زمانی که نسلی عوض شدن یعنی مدت زمان طولانی بوده کم نبوده یعنی خیلی ها مردن و اشخاص جدید ما در روی کار وده کرا بعد اومه بعد از مدت زمان طولانی بیاد میاره وده کرا بعد اومه اون شخصی کلا نجاتی یافته و یکی که گفتیم که نانوا بوده و رئیس نانواها بوده و این یکی هم که ساقی بوده نوشیدنی های انواع مشروب در بار پادشاهان مص بوده پادشاه مص در اون زمان در زمان یوسف خواب دیده دنبال تعبیر خوابه درباراش از اون جادوگراب و غیر و از اون وزراش هیچ کسی از تعبیر خوابش نمیدونه با خودشم مطمئنه که این خواب تعبیری داره خواب الکی نبوده یک مسئله هست هست اینکه خواب ربطی نداره که من مؤمن باشم کافر باشم فاسق باشم فاجر باشم منافقه ما ابتدای درس گفتیم اول این درس تفسیر سوره یوسف گفتیم که این خواب را الله جل جلاله عنوان یک برهان بر توحیدش یاد میکنه یک برهان یک دلیل بر حیدش وقتی که من یک متلبی را در خواب میبینم قبل از وقوعش دلیل بر چیه؟ علم سابق الهی، الله از قبل میدونه که این قراره که بشه الله عالم غیبه، الان قراره که هفت سال حاصل خیزی بشه و هفت سال خوشدالی هفت گافه چاق چله و هفت گافه لاغر خب این تعبیر داره میشه خب این دلیل بر چیه؟ صدق نبوت، برهان خواب بر تایید چی؟ توحید و یکتاپرستی. اینکه که الله فقط که مستحق پرستشه این علمه همینطوری که نیست که انسان در خواب ببینه و بعد تعبیرم بشه و بعدم درس در بیاد کی از قبل به ما الهام کرده الهامات الهی الهام شاید به بشر بشه کافرش مسلمانش برای ارشادش برای که به خودش بیاد برای که بیدار بشه برای که بدونه که اللهی داره این الهام الهی برای حیواناتم هست مثل الله جل جلاله در قران یاد میکنه میگه که وحینا ال نحل وحینا وح الهامه چگونه اون زنبور؟ بدونه که چگونه لونه بسازه چگونه از اون شهد و از اون گل اصلی برداشت بکنه و بعد بیاد زخیرهش بکنه و بعد در اون نظام مهندسی دقیق لونه هاش مثلا اون عسل رو زخیره بکنه خب این نهایت الهام الهیه به اون مخلوقش انا به خب این شخصی که نجاتی آفته و اون دعوت توحیدی درش اثر گذاشت دعوت یوسف در زندان بحث الله که معبودی یک تاست و اون ادله ها را که بهش بازگو میکنه و الى آخر و بعدم خوابش هم تعبیر میشه اصلا خب صدق یوسف در مقام ادعاش که پیغمبر الهی مهر تعییده بر نبوتش و این شخص هم یقین داره هیچ کسی الان بلد نیست این شخص میگه من میتونم راهنماییتون بکنم انا اونبه کن من میتونم راه حل وراش پیدا بکنم انا اونبه کن من به تو خبر میدم که تعبیر چی میشه فرسلون مرا بفرسید اجازه بدید برم بیرون از کاخ برم به زندان که یک کسی من سراغ دارم که بتونه بس توانمندی‌هاست توانمندی ها را باید کشف کرد ها به طرف ما نمیاد استعدادا باید کشف کرد باید ازشون حمایت کرد یک مطلبی هست که اینجا در این سوره یوسف الله اشاره میکنه یک شخص مستعدی یک شخص توانمندی به اسم یوسف یک توانایی داره یک قدرتی داره این قدرت شاید به سلاح نزد مردم پوچ باشه به نزد مردم اونجا یک خابی الکیو که هم برای خودش نداره و نه, نه کاسبی نه مال دنیاست نه هیچی نیست دوش ولی اینجا نه ارزشه ارزشه خیلی مهمه الان آیه بعدی مثلا وقتی که میاد این شخص که نجاتی یافت از زندان میگه یوسف ای هو و افتنا یوسف بیا به ما فتوا بده جلسه گذاشتیم گفتیم بحث فتوا هست خابه مجرده یک دانش نیست یعنی یک مساله مثلا بیاد براشون حل بکنه نه مسئله یک فتوایی که در ازای اون شاید مفاسید ایجاد بشه اگر یوسف اینجا تعبیر خواب رو اشتباه میکرد این هفت تا گاو چاق و چله جا بجا اصلا اشتباه تعبیر میکرد چی میشد در حال روز مردم مصر چون الله اینجوری مقرر کرده با این خواب داره الهام میکنه مردم مواظب خودتون باشید هفت سال بارون هست هفت سال بعدش خوشحالی یا قحطی خب اگر یوسف نمیدونست که این گاو لاغر دلالت بر قحطی و خوشحالی اشتباه تعبیر می‌کرد دودش چه چه می‌کرد مردم و یوسف فتوای اشتباه سبب میشه که دودش تو چشم جامعه بره به خاطر همین اون شخصی که فتوا میده باید باعل باشه اجتهادش از روی علم باشه ما سه تا حالت در اشتهاد داریم یا اینکه اون عالم اجتهاد بکنه و ادوات اجتهاد رو داشته باشه و حسابات بکنه دو تا اجاره. لمجتہد مصیبه اجران ادوات اشتهات داره اشتباه بره یک اجرا ولی خب داره حالات سوم شخص مشتهد نیست شخص ادوات اشتهات رو نداره فتوا میده اونجا اون شخص گناهکار میشه وقتی که علم میاد حتی اگر خواب باشه اینجا اگر خواب اشتباه تعبیر میکرد یوسف تبدیل به مصیبت و تبدیل به یک عقوبتی میشد بر یک قوم میشد که این قوم هلاك بشن از قحطی و خوشحالی خب پس مسئله خیلی مهمه در فتوا و فتوا از کی گرفتن؟ درست ما درست گذشته اشاره کردیم فتوا را یک عالم یک مشتهد نمیتونه کسی را الیزام بکنه چون خبری از یک علمی ولی اون مستفتی اون کسی که فتوا میگیره در دینش باید تحقیق بکنه نباید حرف را کرکرانه بپذیره فرعون؟ همه را میخواد یک نفر دو نفر سه نفر شاید مش태دین زیادی باشن هر کدوم یک اشتغالی راهی بده پادشاه مصر ادوات تشخیصی رو داره میتونه بفهمه و به خاطر همین داره دقت به خرج میده که از کی بپرسه و کی جواب درستی بده همینطوره هم نمیپذیره خب بهش فتوا دادن گفتن این خوابت علکیه خوابت چرت و پرته دریکه نه هنوز باور نداره یکی از اونجا که اصلا کارش نه تعبیر خوابی نه علمی نه فنی نه حرفه هیچ چیزی نیست مشروب سازی ساقیی اصلا ولی میگه اونجا فرصت را استفاده میکنه میگه من راه حل دارم برات ای پادشاه مصر من را بذار بفرست به زندان که اونجا یک کسی سراخ دارم که بتونه تحبیر بکنه یوسف و ایو هست اینجا یک عدبی را الله یادم میده این شخص خماره این شخص ساقیه ولی که چون صدق یوسف را دیده راستی و درستیش رو دیده این عدبه را حفظ کرده ایو هست صدیق ای کسی که راست گویی من به عنوان یک دایه دعوتگر، راس خودم را حفظ بکنم خیلی مهمه. من بد بشم، چهره من بد بشه در جامعه دین زیر سوال میره. برم مغازه جنسی ببرم پولش ندم، من بد میشم. با بد شدن من دین بد میشه. من مسئولم در مقابل رفتارم، خصوصا اون کسی که دعوتگره. یوسف ایها صدیق گفتیم اینجا ادب در خطاب، این ادب را حفظ بکنیم. یک شخص عادی نیست، اینها یک شخصیت عادی نیستند. بد اون مقام اون جایگاه که الله بهشون داده دا اون مقام حفظ بشه ایها صدیقو افتنا فتوا رو گفتیم فی سبعی بقرات سمان در هفت تا گاو چاق یاکلهم سبع عجاف که هفت تا گاو لاغر اونا رو میخورن و سبع سنبولات خضر و اخر یابسد و هفت تا سبز و هفت تا خوشه خشک اخر یابسد یابسد خشک لعلی ارجع ال الناس لعلهم يعلمو لعلی ارجع تو این که بر برگنده به مردم نگفت به پادشاه گفت به مردم بر بگردم چون مسئله مسئله اجتماعیه و اینجا اومده نزد یوسف یوسف هم سرزنشش هم نمی کنه فراموش کرده چون گفت ودکره بعد اومد یعنی بعد از مدت زمانی هم یاد کرده میاد پیش یوسف تعبیر خوابم داره این همه سال گذشت فراموشم کردی ادان اومدی سرزنشش نمیکنه یوسف با کمال ادب احترام حرفاشو می و اینجا اموزش میخواد میگه این قضیه به مردم برمیگرده نمیگه به پادشاه میگه به مردم برمیگرده میگه لعلهم يعلمون تو که بدونن یعنی که چکار چی بکنن چیکار نکنن خب حتما یک رمزی رموزی یک مسئله توش هست خب اینجا رموزی که تو این خواب هست هفت تا گاوه هفت تا گاو چاغ هفت تا لاغر هفت تا خوشه سبز هفت تا خوشه خشک هر کدام یک رمزی هفت تا گاو خب دلال میده گاو ما شیر میگیریم گاو ما باش زراعت میکنیم گاو از گوشتش میخوریم گاو اقتصاد ماست یوسف علیه السلام اینجا از خواب یک برداشت اقتصادی میگه یک اقتصاددان رو الله به همون بنوان نمونه اینجا ارائه میده یوسف تنها پیامبر نبود یک اقتصاددان بود الله میخواد بگه با این تعبیر خواب این که ما که فرستاده شدن تنها فقط به خاطر مصلحت دینی تو نبوده که وزور یادتون بدن نماز یادتون بدن نه حتی برایشون دنیای شما هم مهم بوده و برای الله دنیاتون هم مهمه اگر مهم نبود اینچینین الهام میکرد بر پادشاه مسک قراره که اینطوری بشه و چه کار بکنن حل نشونشون میده اینها کنین در بحث ملائکه وقتی که اعتراض کردن اتقال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه راسك ادك چرا ادم رو خلقت بکنی که فساد بکنه الله چی گفت به اونها قال اني اعلم ما لا تعلمون من میدونیم شما نمیدونید علم سابق الهیه علم آدم الاسماء كلها مو حسب اسمای رو یاد دارین این یک نمونه ای از اون چیزه اینجا الله یک چرخی اقتصادی داره نشون میده به پادشاهی مصر که این چرخیه اقتصادی رو چگونه حفظ بکنن حالا میاد انشالله بهش اشاره خواهیم کرد بعدم ارزش یک چیز بعد از تجربه انسان بهش بیرسه مثلا خب ملائکه اگر مستقیبا الله بهشون میگفت که نه شما به شما کاری نداره نمیخواد که شما اصلا ازار نظر بکنید ارزش آدم نمایان نمیشد الله به آدم یاد داد یاد داد اون علم رو یاد داد بعد از این که آدم اون علم رو ارائه داد ارزش یافت نظر ملائکه اون شکوه مقامی آدم جلوه پیدا کرد با اون علم. اینجا هم همین طور قصه یوسف همینه. هم یک خوابه ولی که الله با اون الهامی که داره میگونه به این پیغمبرش جایگاهش رو داره، شرفش رو داره بالا میبره. علم به انسان شرف میده. و اینجا هست که قدرش را پادشاه مصر میدونه با این قضیه اگر نمیدونست علم نداشت این معلومات رو نداشت اون جایگاه نزد دربار نزد پادشاهی مست پیدا نمی کرد علم بهش شرف داده علم خصوصا علم یه طرف علم اقتصاد هم بلده و یادشون میده میگه خب با توجه به خوابت یه قسمتش بحث چرخش اقتصادی گاوه حاصل خیزی زمین برمیگرده به اون حیوان که باید از اون علف بخوره تا اینکه هم گوش ما بده هم شیر به ما بده اون زمین هم نیاز به شخ داره و باید, باید چرخش اقتصادی هست بشه نه که از یک تاجری از یک ثروتمندی حمایت بشه و بقیه همه کنار زده بشه فقط ما یک پروژه را مثلا بیایم روش سرمایه گذاری بکنیم نه سرمایه گذاری باید رو اون ربطتی که بین اون چرخشه هست. یعنی هر کدوم در جای خودش الان مثلا بفرض اگر گاب برای شوخ زدن به کار برده نمیشه خاطر ما ماشینالات برای بالا بردن تولید بلکه اینکه این چرخش حفظ بشه الله در یادتمون میده که ما حامی همشون باشیم نه اینکه یک گوشه رو بهش بپرتازیم گوشه دیگر رها بشه مسئله دیگر در این قضیه حالا غیر از قضیه چرخش اقتصادی بحث سرمایه‌گذاریه پول سرمایه نیست شما پول رو الان بذاری تو حساب تو 1 میلیارد دو سال دیگه بیایید این پول تو میشه 100 میلیون یعنی ارزش 100 میلیون نداره همه شما میدونید ولی خب عجب از اون شخصی که پول میاد پسنداز میکنه چرا توصیه کرده به زکات زکات مالتون بدی ولی اگر شخصی میلیاردها سرمایه داره آپارتمان 30 طبقه داره زکات روش نیست ده تا کشتی داره روش زکات نیست چرا؟ چون چرخ اقتصادی رو حفظ کرده صد نفر رو به کار گرفته بونگاه ماشین داره بونگاه نمیدونم تاکسی داره صد تا ماشین هم زید دستشه ولی خب روی اون ماشین هایی که گذاشته برای تاکسی را اجاره نیست چرا؟ چون چرخش اقتصادی را حفظ کرده چون عامل داره به کار گرفته نون چند نفر داره میده ذکات روش نیست ذکات وقتی یکت پولی تو بگذاری سرمایه گذاری نکنی با... باش کار نکنی پس پول گذاشتن سرمایه نیست پول گذاشتن سرمایه نیست الای که الله طلا باشه که کنز الله یاد ازش میکنه که ارزشش حفظ شده و حفظ خواهد شد ولیکن خود پول به ذات خودش سرمایه نیست سرمایه توی چیه؟ اون نیازهای مردم نیاز مردم را برابرده بکنیم بعدش نوع بهره برداری از اون نیاز و نوع استفاده و نوع تخزین کردنش، نگهداریش اینا مهمه الله داره الهام میده به پادشاه مثل و یوسف نوع این برداشت از الهام را داره بهشون یاد میده خب الان هفتا خوشه سبز و تا خوشه گندم خوش یک دلیلی ارشادی داره برای خودش یک رمزی داره که باید یوسف دقیق ازش برداشت بکنه هفت تا خوشه سبز وقتی خوشه سبز بشه که بارون بیاد پس بارون حاصل خیزی است هفت تا خوشه خشک خوشصالیه غیر از اینکه خوشصالیه که, خوش که دلات خود خوش شدنش غیر از اینکه خوشصالیه نوع بهره برداری از این خوشصالی که ما در اون حالت خوشصالی کار بکنیم هم به ما راهنمایی داره الله میکنه با اون الهامی که کرده به پادشاه خب چیکار باید بکنیم بگیریم آردش بکنیم نه اشتباهس آفت میزنه. بگیریم گندمش بذاریم، آفت میزنه. رطوبت میزنه، بارون میاد، یا آفتی بیاد. ولی که بهترین راه حل، تولا این یوسف علیه السلام برداشت میکنه از کلمه سنبل، سنبل خوشه است. خوشیهه باید نگه داشته بشه. نه گندم و نه آردش. چون سبب میشه خراب بشه، آفت بزنه. گندم راه یوسف دستور میده تو خوشه‌اش نگهداری بکنید. این چیه؟ این کار را اون اقتصاددان میدونه. اقتصاد فقط در این نیست که چهار تا معامله بداشید چهار تا نمیدونم جدول و حل بکنید و حساب و کتاب بلد باشید نه نوع بهره برداری نوع حفظ اون چرخش‌های اقتصادی نوع بندی الان یوسف از این خواب سهام بندی جیره بندی رو یاد می‌گیره همون چیزایی که قبلا رس بود بود های خودمون الان قراره که ها را ذخیره بکنه نگهداری بکنه بعدم تقسیم بندی بکنه بر حسب نیاز جامعه اینکه به همه‌ی افراد جامعه برسه نه اینکه به یک ادای برسه بی یک ادای دیگه نرسه سهمیه بندی میکنه کوپ میکنه به قول خودمون بعدم یک مسئله دیگری که تو این خواب هست در بحث یوسف نوع تعبیرش اینه که اونها رو را راهنمایی میکنه برای یک مصیبتی که قرار بیاد مصیبت ریزی میخواد بدون برنامه ریزی شما نمیتونید این کارو بکنید هم تو کشاورزی بادکشتون بالا ببرید چون قرار خوش‌خالی بشه هم تو اون نگهداریتون و باید حساب کتاب داشته باشی اگه نه ضرر میکنید جلوه ضرر را باید گرفت این قاعده جلو جلوه ضرر را گرفت بعدم پادشاه مثل براش مهم قضیه مردم پادشاهی که براش مردمش مهم نباشه اون پادشاه مردم نیست اون الله برش میداره ملکه الله برای اون کسی که به مصلحت مردمه براش رو نگهش میداره و اون کسی که سگه مصلحت مردم نباشه از بنش مر... چه دیندار باشه چه بیدین باشه فرقی نمیکنه چون اصل پادشاه اصل سیاسی تأسیس امور یعنی امرار معاش مردم اون عالم اون دانا اون فرهیخته وقتی که شون مردم رو تأمین نکنه سیاست مردم تسییس نکنه یعنی زمام اقتصادی مردم رو نچرخونه نتونه بچرخونه چرخشه را حفظ نکنه اون شخص لیاقت ریاست بر مردم و برنامه‌دهی بر مردم نداره سیاست برنامه است دیگه این لیاقت این شرف و این مقام نداره و این پادشاه مثل از اینجا میترسیده مردم اگر ازش ناراضی بشن مردم اگر شورش بکنن مردم اگر گرسنه بشن. از چشم کی میبینن؟ از چشم؟ خدا که نمی بینن از چشم اون کسی که زمام و امور به دستش بوده اون پادشاه بود چرا نمیامده از قبل ما ریزی میکنه چرا از قاب فکر نبوده و غالب شورش ها و انقلاباتی که در طول ما اسلام قبل از اسلام کار نداریم در 1400 سال که ما دیدیم همش به خاطر دنیا بوده به خاطر دین نبوده بیشترش حالا نمیگم حالا همش حتی در زمان خلفای راشد عثمان رضی الله عنه تمع زیادی بود که مدن شورش کردن بر علی عثمان اومدن اعتراض کردن خوارج که تو چرا به فلانی مییدی به فلانی اومدن دخالت کردن در امور سیاسی دو معامی نمیتونن تصمیم میگیرن مردم عادی نمیتونن تصمیم میگیرن برای اقتصاد. اگر بخوام بیان تصمیم بگیرن، اگر بیان اظهار نظر بکنن، دودش تا چشمی خودشون میره. نیاز به اقتصاددان، نیاز به فریح داره. همینطوری نیست. پادشاه مصر بزرگان قومش رو جمع می‌کنه. نمیاد افراد عامی را بیاره توی کار. افراد بی‌سواد رو بیاره توی کار. عثمان رضی الله عنه چی گفت به خوارج؟ گفت که من میدونم کی رو گذاشتم. شما نگاه می‌کنید که این بنی امیه است. خب با جان من این سر و کار دارم باش. من از علمش، از دانشش، از اعتمادش، اینا همه میدونم. من نمیتونم کسی که نمیشناسم رو در اون گابزارم. توجیهشون کرد راضی هم شدن ولی خب اون یهود با اون برنامه که داشتن دستیسیه که داشتن مردم را شوروندن علیه حثمان رضی الله عنه که سبب شد که او را به شهادت پرسونن پس مهم بحث اقتصاد بحث زمام امور از امور سیاسی از امور اجتماعی از امور اقتصادی که براش برنامه ریزی بشه و اینجا این پیامبر فرستاده شده برای این قوم امور زندگی دنیاوی اونها را به اونها یاد بده امور اقتصادشون الله حتی اقتصادتونم بهتون یاد میده حتی به فکر آیندهتون هست اینطوری نیست که شما را خلقت بکنه و رهاتو بکنه, بکنه نه به فکرتون هست قال تزرعون سبع سنینا دابا فما حصدتم فذره فی سنبله الا من ما تاكلون قال تزرعون سبع سنين هفت سال میکاری تعبیر خواب این خواب اینجنین دلالت داشت هفت سال کشت و حاصل خیزی هفت سالم و قحطی. پس به خاطر همین برنامه میده اف سال خوب بکارید تاثررعون سب عسینه دعبا به استمرار و خوب توسعه بدید صنعت کشاورزی تو صنعت کشاورزی را خوب تعمین بکنید باید کشور بکنید خوب فرصت استفاده ب غنیمت قنیمت از این حاصل خیزی فما حساتتون فدر رو فییسونبوله اون چیزی هم برداشت میکنید بذارید تو اون خوشش نگه داشته به فدررو و فی مباله تعبیر خوابه اقتصاد یادشون میده نوع نگهداری فدر رو سنبله الا اللاقللی هم به الا ال اندکی که می خورید ال اندکی که از اون می استفاده نکنید نخورید بعضی اصلا مالشون را در سرمایه غیر حقیقی میذارن مثلا چی؟ برای ساختن کاخی برای خودشون این کاخه سرمایه نیست وقتی که یه خانه بزرگی برای خود ساخت پولتو گذاشتی در اون شاید فردا کسی نیاد تو موقعی که نیاز داشته باشی اون خونه و منزلت از بخره بدون که پولت را چگونه در اقتصاد خرج بکنی در اینکه این پول برایت پول بیاره نه اینکه این پول را فقط برای خود اندوخته بکنی و یک گوشه کنار بذاری پس بحث اقتصاد هنوز همچنان اهدامه داره و نوع برنامه یوسف برای برای پادشاهم ثم من بعد ذلك سبع شداد بدونید هف سال سختی میاد قحت میاد یا کل نه ما قدمتم نه یا کل نه ما قدمتم یعنی شما میخورید از اون چیزی که ذخیره کردید از اون چی از اون خوشها ها ما قدمتم لهن از اون خوشه ها اون هفت تا لاغر میان هفت تا گاوه چاقه را میخورن اون گاوه لاغره چیه اون خوشحالی اون خوشه های گندمی که شما ذخیره کردید دارید میخورید هفت تا گاوه لاغر هفت تا چاق را خوردن چاقه حاصل خیزی بود لاغره خوشحالی و قحطیه قحطیا سبب میشن که از اون چیزی که شما ذخیره کردید بخورید یکل ما قدمتون لهنا الا قليلا مما تحسنون مگر از ان اندکی که برای کشت دوباره استفاده این اینطوری نباشه که دیگه شما یک کشاورزان اون چیزی که ذخیره دیگه همه بعدا نه به فکر این باشید که بعد از این هفت سال نیاز به کشت مجددی دارید که باید دوباره بکارید پس اون سهمش هم رها بشه پس این سهمی بندی نوع استفاده از اون یک قسمتش گذاشته برای کشت اداره یک قسمتش گذاشته واسه طرف روزمره و اونم با سهمیه بندی خب اینجا این خواب رو تعبیر میکنه و این خوابهای سگانی که در اینجا تعبیر شدن خواب فرعون تعبیر شد خواب اون شخص ساقی تعبیر شد خواب اون نانوا هم تعبیر شد سه تا خواب تعبیر میشه خوابی اول بشارت بود برای نجات انواع خواب اینجا خوابی برای بشارت شخصی نجات به ساقی که سبب نجات یوسف هم میشه این خواب بشارته هم برای برای هم برای اون شخص خوابی گوش زده خبر از یک واقعه حشداره مثل اون شخصی که قرار بود به سلیم کشانده بشه و خواب دیگرم, خواب دیگرم یک برنامه هست یک توجیه یک براممه ریزی که تو باید به نسبت آینده داشته باشی و براش هزینه بکنی از وقت خود مال خودت براش هزینه بکنی خیلی جا هست مثلا طرف خواب می میگه من مرده تو خوابم اومده پدرم پدر بزرگم دیدم میگه دستم درد میکنه میگه معدم درد میکنه میگگه فلان جام درد می نه نهو کنید قاعده کلی بهتون بگم مثل فقط در این دنیامون نیست که مثلا ما فقط به فکر این باشیم که مثلا این خوابه فقط ما رو را راهنمایی بکنه که کلاممثل پادشاه مز که خوشالی میشه که من پول به میاد که نمیدونم پول از من گرفته میشه که تجارتم کساد میشه نه اینطوری نیست که ما فقط توقع دنیوی از خواب داشته باشیم جوهای توقعات اخروی هستن خصوصا بحث میتین از باب تذکر دارم میگم میت هم نیاز به ما داره اگر میتی تو خوابت اومد این احتیاج به تو داره براش صدقه بده براش دعا بکن این قاعده کلی دارم بهتون میگم ما. اون میتی که تو خوابمون هست نیاز به دعای ما داره او را فراموش نکنیم حالا میخواد چه در حالت خوبی او را ببینیم چه در حالت بدی او را ببینیم اون چیزی که ما بهش تقدیم میکنیم از صدقه حجی که به جاش میریم از دعایی که بهش میکنیم اون به خودمون برمیگرده فرشته هست بر سر ما میگه برای تو هم همجنین به مثلش به فکر خودمون باشیم این احسان ما در حق والدین ما باشه آبا و اجدادمون باشه فرزندمون خواهرمون برادرمون اون چیزی که ما به اونها تقدیم میکنیم به خودمون برمیگرده این برای آینده برای اون جایی که در قبر خوابون نمیشیم و محتاج همین حسنات میشیم همین کاری که ما با اموات خودمون میکنیم تدان اگر خوبی کردی خوبی می‌بینی بدی کردی بدی می‌بینی به نفع خودت اگر بخوای جنازه‌ی مردم نری اگر بخوای به عیادت مریض مردم نری اگر به فکر مردم نباشی مردم فردا به فکر خودتم نمیشه پس به فکر انبواتمون باشی مخصوصاً این خواب‌ها که ما هر ازگاهی یعنی نیست که مثلا کسی بگه من خواب مرده‌ای رو ندیدم معمولا انسان می‌بینه اینا همیش ما رو به فکر این میندازه لو الله می‌خواد ما رو ارشاد بکنه که تو هم بدون تو هم می‌میری به فکر اون باش تو به فکر تو هم پس از مرگت کسی باشه سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله الله على محمد وعلى محمد